در حکمت اگر عرستوب و جمهوری، در قدرت اگرچه قیصر و فقفوری، مینوش نوش نجامجم که گور آخر کار، گر بهرامی که آقابت در گوری. در کارگه کوزگری کردم رای، در پایه چرخ دیدم استاد و پای، میکرد دلیر کوزه را دست و سر از کله پادشاه و از پای گدای. رو بیخبری گزین اگر با خبری، تا از کف مستان ازل باده خوری، تو بیخبری بیخبری کار تو نیست، هر بیخبری را نرسد بیخبری. زان بیشتر ای سنم که در ره گذری، حاکم من تو کوزه کند کوزه گری، زان کوزه می که نیست در بیزرری، پر کن قدهی بخور به من دهده ده